ستارهی بدرخشید و ماه مجلس شد دل رمیده ما را رفیق و مونست شد نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به قمز مسئله آموز صد مدرس شد به بوی او دل بیمار آشغانچ و سبا پدای آرز نسرین و چشم نرگست شد به صدر مستبعم می نشاند اکنون دوست گدای شهر نگه کن که میره مجلس شد خیال آب خزر بست و جام اسکندر به جر نوشی سلطان عبال فبارس شد ترب محبت کنون شود معمور که تاغ عبروی یار منش مهندس شد لب از ترشق می پاک کن برای خدا که خاطرم به هزاران گنه موسوس شد چرشمه تو شرابی به عاشقان پیمود که علم بی خبر افتاد و عقل بی اس شد چو زر عزیز وجود است نظم من آری قبول دولتیان کیمیای این مس شد زراه میکده یاران انان بگردانید چرا که حافظ از این راه رفت و مفلس شد